احمد الشیطان الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب صلی اللہ علیه و رسول الله و آل طیبین و قاهرین و معصومین و علی دائم اجمعین اللهم افراد جمیع المشترین و ارحمنا و که یا ارحم الراحمین ارس شد بحثی که مفرح بود راجع این روایات رو با اینکه خونده بودیم این باز یک تحلیل و تحقیق نهایی راجع این روایات و ببینیم میتونیم لا اینها ببینیم مطلب از کجا شروع شده و چطوری شروع شده و به اینجا رسیده یا نه از شد که یک قبایتی در کتاب یاسب نکلون بود و هر دوها هل قتل الا هلیتو این راجع به حد و القرن الانیت رو بیه توضیح هست به عنوان روایت در میان مسابر اهل سنت ما نداریم در میان روایت خود, خود ما هم غیر از این به اسنادی هم علیه این هم نداریم البته خواهد آمد عبور هم این مضمون نعبی کرده عبور بختری وقت که از خیلی نگاهی بشنه اکز اول بریه. معروف بود به وضع حدیث این یه خیلی معروف اول بختری میگنگاه ها شبا هم بود چه بود. شبا بیدار بودن مشهه بود چراح میخواست این شبا بیدار بودن برای که وضع حدیث کنه که اله حدیث کنه علایه حاله قاضی هم بود خیلی شن اجتماعی خاصی هم داشت به هر حال این مطلب که حد و عقه الا انیتو فعلا در میان مسادر ما در دو جا آمده این دوباره میشم سابقا خونده ما رو بازم میخوند و یکی در کتاب تحلیل شیف به نهر از کتاب صفا از فیاس ابن کبول برمیاده یکی هم در برگول اسناد از کتاب اولبختری این به لحاظ به ما مستقلا جایی نداریم در روایت آمه هم هم رسول الله نداریم در باب صاحب حالا در باب صاحب اونی که آمد دارم به سیب حد و صاحب اما این که حد و وربت اللا اما بحث اللا انیتو در فتاوای علماشون آمده یعنی این بحث آمده و اونم ظاهرن اینطوری مطرح کردن صدرشو اینجوری مطرح کردن که ما در باب مرتد و کافر قائل به توبه بشیم یا نشیم اگه گفتیم توبه میشه صاحب قبول میشه نشد اونم قبول میشه پس در حقیقت الانیت خوب رو مهیار فرار زدن برای این که در حد مرتد چه قاعد بشیم این اطلاقی یه بخشه این در میان کلماتی که ما از سومنیادی بیشتر اینجوری بوده بخشه اما ظاهرا این نباشه بس تنها این نباشه یعنی در این حد نباشه یکی این که اعتماد داره خصوص صاحب خودش قبله ولو توبه هم بگونه اما اون مثلا مرتب نه این احتمال داره این خصوصیات ساحل باشه و احتمال دیگری داره که اگر این احتمال درست باشه نشان دهنده اینه که این حدیث تقریبا یه دان اجرمانونه که عوضه تر دان ایمان ساده باکی شده باشه اون بحث این بود که غیر از وقت مرتبی که از امون دانهای قمن و دربی نبو اختلوب مطرح بود بحثی بردها در زمان امام صادر بران زنادقه که زندیق یا زندیق یا زندین به اصطلاح زند دین دین که معلومه زندن معنی همین کتاب هرستایی ها یعنی زربوشی ها عدوث ظاهرن چون در گفت ایرانی زیاد بودن اولین با این افکار انحرافی ترسط و اونها بخشون و ظاهرن اینها خیلی از این که حالا نفی اسلام میکردن به شدت نید مقابل اسلام ایستاده بودند. امکه ما هم این نوع عبادیگری هم داشتن این نوع به اسلام هم داشتن از کنم کنم برسیده این هم در تاریخ گستر برسیده روحو در اینجا رو صحبت نیم کنم با که در مساده تاریخی هست محوم سیر موضوع در اروانه رو با باردارد که عمالی من رو به عمالی در ون چند سرفی قضا که سال ظهور زنازه داره سال ۲۸ می دونه این زمان ماه سال ۲۸ در کوفه که زمان در این خمیه هست و کمتا هم از روح سالی محروف داشتم مثل نبل اوجا شرد کردم کنش و حتی با یه حزب گروه از گروه های هم خودش که احهابی بودن من کم می رفتن من که می و من تو رو کربه می شستن مسلمان مسخری می کنن دید رو مسخری کربه رو مسخری، بعدم سال سال این در حجا سالهای سال رو پنجا هشت رو پشکن کدن به یکی این وقت اومدتر توصیل مهدی احباسی کشته میشه و در اون زمان یک گفه این رضا که ای از سالی ایشون بود یکی ای ای از کارهایشون کشتن زنادره این زنادره ظاهرم در اون وقت این بحث مطرح میشد که آیا توبه اینها قبول میشه یا نمیشه یعنی دو تا بخص راجع به مطرح بود خوب دقت بکنید یکی از کجا ما بشناسیم شخص دیره چون بعضی از اینها ها میازن تو جامعه اسلامی نام و سبون خود میام ما وقتی کام یه اوقات از هاشون دو نفر دو نفر پیدا میکرد نمیتونه آین درو این زدیق جای شما ها کسی امتونه شد از یه بحث این بود که اگر خودش به من زندیق نیستم اا مردم ا نماز میکونن ما دیدیم تو حج آمد اعمال حج انجان مد لن دو نفر معتقد شدن که یشون زندیق فتن نه ما میدینیم با ما صحبت کرد ان بحث مطرح بود گفتن نه ا همین قبول میکن ان رو هم به امیرالممنین نسبت دادن روشن شد ار کرم ا که ما میدونیم شواهد حاکیز از این که ظهور این اصطلاح در زمان مهم صادقه رفتی به امیر مهمی ندارد به هر حال این مطلع بود که به امیر نسبت دانم و به هر حال جز به احتمالا با قول ما فرق حکومتی و بلایی بود ظاهرت کشتن زنازقه شن مهلیت زیاد به قول رایی را نیمون بابی کچی را اندار مقداره شاده ندارم با که آنی زنگرمی بودن هر برای از این که توبهش هم قبول نمی کنند پس یه بحث که فیاد سبوت بود یک بحث هم توبه بود ما توبه کردنه موزن نمیشه زندگی توبهش قبول نمیشه. از مالک نمی شده که ساحل توبهش قبول نمی شد و ایشون قادر بوده که زندگی هم توبهش قبول نمیشه. شد روکشن شد چیم خواهر سپنه. پس دیگری که در قرن دوم این مورفه آیا ساهر حکم کافره که قبول بشه یا ساهر حکم زنبیغه که قبول نشه به میکنه مستیبای بایدی که این گهه لحن یک این در محاول اون مالکه مالکه حتی اگر ساهر باز هم یوزن زنبیغ هم جوزن. و ارز کردم این محضب رو به امیرالمومنین هم در فقه نسبت دادم الان رویم در همین کتاب جامعه احادیس که در این روایت در کتاب به فهم یه سی جامعه احادیس این ای صفحه دو باب سی و باب شهاداد. در کتاب کافی داره ادتا من هست خواهرم نزیار داره؟ این محمد ابن حسن بن شمون از کل این سهل این زیاراته شواهد موجود ما به راه آمده هم از کوفه حدیث کرده هم از غیر کوفه از حد بسره حدیث نقل کرده این حدیث بسری ماست کلینی و استادی جانبسر مال قوم یا ری هستن اما ابن شمون ایفون به از رأسای خط گلوم به بسرند خط انحرافی بسر اینه ازن شمونه اما عبدالله ابن عبدالرحمن این دیگه از رو عشده معروف از بالعصم کوب کرده اصلا شده هم بوشه سنگی بوده الاسم به بسری ای این رو خوب خیلی شاید مثلا انسان احساس میکنه در میانه مجموعه علم و روبات شیعه دو سه دار هستن که تحبیر آزاجی خیلی تونده یکی ای جام این اصمه در میان بسره با که قلال در بسره اما همشون این اصمه و یه توضیحاتی وجودیشون جبیشون داده بشه به حال مثل مرحوم ابن غزالی که ای و یکی از اجابه که کتابی در مزار داره خود اصم در مقداری از مزار ابن غزاری کامل زیاد کتاب اصمه سمت تسریم کنن عبدالله به بسریم که از کنید برها استاد فرمان که عجیبه این ما بخواییم کتاب قبول بکنیم با وجود این جور افراد فوقلان زعیف چپا رو در از این اصطلاحا خط قلوم بسره است اصطلاحا ولیکن در اینها خط قلوم هم مختلفه است این از اشد خط قلوم زرفه است من از کنید ما مثلا با احمد ابن علی کوفی سیدفی کوفی کوفه داریم که خیلی بدنامه‌ای که ایشون از بس عصب بهش در این رتبه ما کم داریم فراجون‌ها اینطور تعابیرتون تو یه اون حسن عباد شدم چرا تعابیرتون در ما کم رتبه واسه زیاده و مخصوصا کتابی در نظر داره در قضاوی نیست کتابوشون نگاه می‌کنم جریه کتاب مجهوله <تصفح> این کتاب در مجهوله متأسفانه حالا قصه به این طوران نیست که اینا گفتن حالا شهر این شهری این این بحثی است مثلا در اجازه در کافی مثلا اسمیشون ایشون آمده علاوه بر از به أشهر کتب هست ان مسعود ایشون از رباط عصری ماست که ظاهراً از شیوخ راشائر هم بوده یعنی منزلت اجتماعی داشته دیال شهری داره ایشان خود ایشان قابل قبوله اما سند ایشون روشن نیست باز خرابی داره ابن ابي عبد الله ببینید اون خطه بلو خطه بلو مخصوص هم به نظر ما بیشترین خطه بلو, بلو, بلو, بلو سیاسی هم یعنی اون بحث اجتماعی تصدیه اجتماعی کان یحکم و فی زندیغ این بادر بودر به سر برنیل المؤمنی کان یحکم و فی زندیغ ادا شهد علیه رجلان عدلان مرزیان و شهد لغو الفون بالبرائه یو جیز و شهاده تر رجله و یوب که روی شهادت الان لا نهو دینن مکتوب این کار این بیشتر میگه زوار معدی ابواسی یعنی ممکن اون وقتی که شروع کرده تنادرگر کشته زندگی کشی اون شما میگه با من نماز می خونن چون نماز از ما ظاهرش میکنه یعنی نتون به ظاهرش این کلافش این حدیث ترتیبش و بحثش رو تعاویرش بیشتر میخوره به همون زمان مهدی عباسی به امیر المؤمنه رو رفتی نداره وقت دقت بکنید جعفریات هم که از کتاب سر سرکومیت و درمس سرکومی بوده این هم منصوب به امیر المؤمنه بوده به اسنادی هم جعفر هم عبی ان جدی هم مهلی هم علیه السلام خانی بر برای شهادت الرجلین علی عدلین المرزیهیم علل رجل انه زنديق و لو شهد له الفندل براءه اطلال شهاده على العرض لانه دين مكتوب چه عجیبه اون را به شما ارکردن این خط قلوب انحرافی متهم به دروغ و جعل در بغداد یک طرف این کتابم در مصر پخش شده اینم باز منسوب به علیه اینم همونه چه عجیبه این هم چی من یک خطی پشت سر جریان هست که یک حرفای عجیب غریب. احتمال داره که در سر زمان این مطلب رو به عنوان مقابل نصف دادم دیگه اینجا باز داره که روینا انجعفرد محمد در کتاب دعا این این هم مال مصر انا عبیه انا آبانی انا حلیه کان یستتیب و زنا دقیم ولا یستتیب و من ولد اسلام این رو فقط در این دعا ام آمده جای دیگه ندارید ما دقت میکنیم این تعبیر ننی کان یتی و زنادره این خلاف اون فتو بود که اثر مال می گفت توبش توش قبول نمیشه زندگی قبول نمیشه مرت قبول میشه. پس یهتی که بلیه مثلا این تیکه یتی زنادره این در هیچ مستر ما نیامده، ببینید وقتی مقایسه میکن معبول از امنیار رو الان یکیش در کافی آمده اززارش خط بث خط انحرافی بوده، یکی در یاد عامل و یکی هم در جامعه این هر دو جعثه و داو در جزء میراثی مصری هستند دراغوزای ما نمندن در در یکی مصری داره کان یثتی بزناوره این الان ما چیز نداریم ولای از طبیب و من ولد فی اسلام بعد داره و کان یعبر شهاد ذرجولین العدلین علی الرجل رجل انه زندیق و و نوشه هدیده و الفانوبل برای مرتبه اون زیلم دارن از خوب بقصد بکنی این مرتبه ای اولا که لا یستفیب و زنادقه یستفیب و زنادقه این فقط توی مستر مصری و یک مستر اینی که اگر دو نفر گفتن نه ازالک هرتا کس دیگر قبول نکنی در سه مستر آمد دو تا مصری هست یکی هم به سر بسیار ضعیفی از بسره من همیشه عرف کردون که ال در شیعه تقلیدش در کوفه است. گفتم که مثلا بحثه با کوفه چه فرقی داره؟ ببین ما از کوفه چیزی نگید مرعون. یعنی حتی در مصحف کتاب سخونی هم داغری نداره چون کله این در زا رسی از اون کذابون خارج شده. چه لاریو. مثلا همین কথাটা و در مسند زین در مسند زید داره در صفحه 340 مسند زید حدثنی زید انا علیه آن عبیه، آن جدیه مزدک. آن علیاً امّا او هر رق من نام. ظاهرش اینه که توبه نکرده، توبه قبول نکرده. این هم ما آن نداریم که هر رق علیاً زنادگه بنام. که یک بزنه انسان میاد که این هم, این هم از مستند استدزی. از که مستذل بعد از زیشان مطرح میشه توسط انخواده به ذهن آدم کرد که قذایه زمان محیه اپاسی و زندگی خوشی در این جهت موثر بوده. باز در خود مستند ذ بعد از چند صفحه صفحه سال۶ زید ذر انعوی انجد دی علی کان یاستطی بر موردت سراس در یا خلاز است خیلی همچیده. در کتاب دعایم داشت یستتیب و زنازغه اما در این کتاب مستنده زیب داره یستتیب و مرتب. یعنی مخواد چی رو که مرتب یستتیب لیکن زنازغه داره ولی زنازغه داره حتی در این قسمتش که راجب استطابه باشه و توبه داده در این قسمتش باز در مسادر ما و مسادر زیدی ها اختلافه یستتی بل مرتب سلاسند البته الان پیش ما پیش شیعه اون دوازی که محمد مسلم و غیر که لا توبت اما اینا نرم می کنن انعالی این کان اینم ما باز مخالفیم در اونجا و الله او و قسم میراثه بین ورستت مسلمین این هم یک نقل دیگه از این چند تا نقل من اضافه کردم و راجع به زندگی. پس ما برگیم اللاهنیتوب در ساحر احتمالا ناظر به این باشه فکر میکنم چلا روشن شد احتمالا ناظر به این باشه که اللاهنیتوب یعنی ساحر رو به منزله مرکب قرار دادن نه به منظره زندگی. قیل از اون بسردن. و کسانی که می گفتن حدوه و او رو به منزله زنبی قرار دادن مثل مالک از امام احضره بیدن همجوری که یک سن مسلقه برای توبت لد. اونجا او رو به منزله زنبی قرار دادن پس و شواهد هم نشون میده که در کتاب مسندزه تقریبا این طور بوده مرتض یستدار لیکن زنبی لایستدار این در کتاب روی بقول ما ها چار امامی بقول در کتابی شیچ امامی ها نه زنده هم یستتا این اختلافات نقلهایی که که این مسئله از امیر المومین شده مثلا تو همون مسئله که ولو شهد علیه الفن برای عبتل شهاده زمان از کوفه که معدن روایات اهل بیته و از خود اهل بیت چیزی نیانایید یکی از بسو آمده به خط ضعیف یه دو تا از مثل آمده که امیر و مومنی این مطلب ما محتقی هر که آدم سنده ها رو نگاه میکنه و دقت میکنه خود این نشون میده که سنده چه مشکلی داره یکی خیلی نیمه این بر اون ما شواهد رو پیدا بکنیم ما این روایات سه از کتاب مکاسم همش رو کنیم. فقط الان به اون مقداری که بردگرده به ما نحن که راجع به حده متحرز میشیم ببینید در این کتاب جانعادی جدید 22 صفحه دیویست با 28 از اقوانویت تصف که سه رو عبرده او حدیث اولش راجع به قصه مرد شخص بوده ساحت بوده توبه کرده اصلا مکه انواق جمع کرده خدمت امام داره امام که تمام دیمون توبه امام بیدیم که هل بلا تحرز این روایت لاعقل مفادشی دی که توبهش قبول میشه اگر صاحر هم خود پشت باشه توبه شد پس با اون روایت این بیگه لا که مطلقا هم داشت قسم لاقل این روایت معارض این راجع به این روایت دوم و این روایت دوم سند ضعیفی داره اشعاری داره که مثلا اینکه که اون هاونتو ماروز این گزن فلاتک فر بعد یه قسمتی از کتاب تفسیر امام اسکری رو ایشون اوورده فقط تو این تفسیر بیشتر بینانده که کفر اما اینکه حدش چی باشه و خب تفسیرم که گفتیم ارزش نداره این با عنوان کفر آمده در کتاب تفسیر ایاشی نهبی اشعاری داره که کافرون اینجور گفتن اما نداره که سه خود کنی ها این شماره چهار شماره پنجم رفتی ما نحنفی نداره شماره شیش در قربل اصنار از سندی ابن محمد البزاز قال حدثان عبالبختری ان جعفر ان عبیه ان آبای ان جعفر ان عبیه ان بن ابن طالب قال من تعلم نشه ان منسه قلیلا کانه او کسیرا فقط کفر این فقط کفر تو نسخه دیگه نیامده این تو فقط نسخه عبالبختری هست ارز کردیم نسخه از من قیاسم کلوب این تو کان آخر اهدهی برنده. این فقط کفر دیگه اضافه کرده خود عبالبختری که جهال ارز پس ما کلا این روایت رو من تعلم شیع امنسر قیزن و پسیرن کان آخر اهدهی برد این رو ازگردین در میان کتاب اهل سنت با اشکال گیره سنت هست هم رسول الله نرحب تا این حدش در مسادر ما هم در دو که آمده یکی هم کتاب تحضیب شیف از فتحار وقت در نوز ما یک اضافه هم داره و حد دو این توی کتاب اهل سنت نیست اما توی کتاب ما هست این فتبا الاعنیتوان به سراحت در کلمات قدما نیست یعنی مثلا کلمات ظاهر کلینی که ساهران مسلمین یختر محدود نیست به تو بره از کدر این رهد دوه و حق الاعنیتو به لحاظ مستری فقط و فقط در کتاب شیخ توسی آمده فقط و فقط در کافی و تحزید نیام در کافی و فقید نیامده در اونا همه روحید که حدوال قتله اما این الا انیتو نیامده و در غیر خطب عربه در کتاب قربل اصنا از کردیم سر قربل اصنا در این بوده که این یک ای نزدیک نزدیکی بوده بین همیری به امام صادق چون همیری حدود نزدیک سال سی ست وفاتشه 297 به کوفه رفته بعد از این تاریخ وفاتیم شاید و از امام صادق به دو باست نقل کرده سنده ابن محمد و عقل بختری ایشون در این کتابش این روزه که خاطر قربه اثنان خب زیار زیگه فاصله مثلا مدود 150 سال و با دو باسته هم در اینجا با چهار باسته باشه یا به قد درقل سه سال بلا چهار تا پنج تا اینطوریه اما ایشون با دو باسته نهار کرده اشت دو قربه اثنان و از کردیم درباره عقل بختری به نظر ابن غزاری بگه و احالی یعنی این عبالبختری برپرزم که جر می کرده خوبیش این بوده که یه مقدار روایات رو بلک بوده مثلا این روایت تو کتاب به قیاس نکمب یا اصحاب نعمار دیده مثلا من یا جای دیده یه سند جلی اضافه کرده که انجرده رو بیان یا انعبایی بعدم سقط کفر روش اضافه کرده این اضافات عبالبختری تو مصنف دیگه تا از کفر نیست کان آخر اهدهی هست و الکاتبون الناس در کتب اهل سنت نیست، اون در کتب ما هست. هم. در پس این روایت هم با این بحث و با اون مقدماتی که عرض کردیم روشن شد. و سر مناقشه ما هم با فتاوی مرحوم استادگی یکfclose اینجا تمام شو کنیم پس این که تعلم سر خودش کفر باشه. ایشید در بعد تفر اون نداشت، اون در اون مسائل بحث نفر ندید. کان اخر احریبه. کفر باشه. آخر عددید به تعم تنها و حدش هم این باشه که گردن زده بشه مگر با طوربه انصافاً خیلی مشکله من چند بار سابقا عرض کردم عدی از این روایاتی که منصول از به امیر معامین تا که مثل س ک دیگران اگر اجبابده که متنش در روایات عاممه هست یا فتابای امنه هست اصلا و حد قتل برای تو از فتابای آم است. بله مالک میگن حد دوقط مطققا و یاقطاب و اللا این بوده، این هم یکی ای از اجایی و کاری سید اینجا وجود داری امده روایتی که هست روایت شماله هفت اون بار این امده روایتی در با حد صاحبه علی ابن قلیمی علی ابن قلیم عبی عبی نوفلی که همون نسخه کتاب سکتونی امده اینه اینی که در کافی آمده اینه اینجوری در کافی آمده اینه عبی عبید الله قال قال رسول الله از کرده این مطلب در روایت هم وارد روا بله جمع بین دوتا فتوا و روایت مانند مثلا ادهی کنزم عمر بوده صاحر یختر از اون هم پیغمبر نمیختل یهودی رو چمش این شد که صاحر مسلمان یختر غیر مسلمان لایختر صاحر مسلمین یختر و صاحر کفار لایختر و عجیب اینه خیلی آرسول الله و نمی لایختر خیلی هم تحجیب اصل این حدیث ثابت نه رسول به این صورت عجیب پیام یا رسول الله برای ملا رفسال واقعا در کفر اعظم منسعر الان و شرک مغرونان را کفر و شرک دیگه کی شد مغرم صدوق در کتاب طغی هم این روایت را از سکونی ان جفر بن محمد آورده پس مرحوم کلینی آورده مرحوم سکونی مرحوم شیخ صدوق هم آورده شیعه طوسی هم آورده در همین جلد ده از همین راه کتاب به اصطلاح کلینی در کتاب ایلال شرایه هم صدوق عبرده در ایلال شهر سندش رو ده کرده حدثنا اینو ولی قال حدثنا سفار ان احمد ابی عبدالله برقی برقی قسر ان نوفلی ان الحسین یزید نوفلی که ما احس کردیم احتمال میدیم ولی علم و اندالله نوفلی چون اواخر و انبره آهده تهران برقی هم در قوم بوده آمده فهمه ازشون حدیث ده. کتاب تحمل کرده پس خیلی به نظر من الان واضحه دو نسخه از کتاب سکونی همون نسخه نوفه دو تاش یکی نسخه برگی برگی قسر که نسخه ابرانه آشن در هر دو نسخه این بوده تفاوت مختصر مروشه با هم دارن شد. پس بنابراین که از اصول روایاتی که باب ساهر هست و تکیلی در قتل اینه و اضافه بر اینگار حکم هست به رسول الله نسبت داده شده این مطلب در جعفریات هم آمده ما از که جعفریات به احتمال بسیار قریه هم کتاب سپونی باشه به احتمال بسیار بسیار قوی با اون کتاب قضایه و سننه و احکام رابطه داشته باشه در جعفریات من جعفرن عبیان آبائه همینطور چون این همین من میگه به یک همشون همهشون به یک دو باز در دعائم که این هم از کتب مصری ما زیم. مسادر مصری ما ان علی ان رسول الله قالصار و مسلمی اختار لیکن من ارز کردم کتاب دعائم اگر من علی نعبو میکنه به احتمال قوی از قضایاتان و احکامه به احتمال بسیار کرد شواهد ما حاکیست که از کتاب این قسمتاش از اون کتاب قضاایا رو سنن و احکامه و توضیحش هم ارز کردیم این البته احتمال اول در حد کتاب ایزاه بازی نعمان الدین ایزا ایزا به اسم ایزا مصادر کتابی ناخرید ثقلش هم, هم ذکر کرده قصر صرغ مفصل طه علی ذکر کرده که اخر هم صرغی که شیخ طوسی به این کتاب داره تنشون بوده کتاب پیش ایشان بوده از کتاب نرد رفت ببینید خوب دقت کنیم معلوم میشه این خیلی میتونه در ما کارساز باشه معلوم متن کتاب اول طولانی بوده دقیق کنیم متن کتاب مثلا از اون حدود مثلا دین سخه بوده به اصطلاح ما سخونی دو فکرش شده برداشته مثلا دو سخه رو اون متن کتاب شن مثلا متن کتاب اینجور بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم قال علی و نزال کلم یقتل رسول الله ابن عاصم یهودی الذي سهره این مطلب و نزال کلم یقتل بین کلامی که از زهری نقل شده زمان از صحیحا ایشون گفته که ساحل کافر کشه میریک چون رسول الله سهر رسول الله سهر کردن به یک یهودی این کارو کرد و تعبیرم داره که صنعفی ان در رسول الله تاثیر گذاشته، سدیم که موثر بود و ما درباره بیان رسول خیلی عجیبه یعنی اون که در کتاب علی بوده ببینید آل علی و ملذالک لم یفصل رسول ابن عاصم یهودی علیلی سهران. و از عجایب اینه که در جعر داره که ابن عاصم سهر نبی فقتل او خودمان علیه چرا <تصفح> خیلی عجیبه قال علی این قال علیان این همون کتابه فعلا شهد رجلان عدلان علا رجل من المسلمین انهو سهر قتل لانهو کفرون و سهر و کفرون خیلی عجیبی روز خوندیم این باشه از کتاب مستنزه سند نداشت معروش این یه اونجا برد فقط حل دمو یاتون باشه فقط حل دمو هون دیروز اینجا داره که قتل لانهو کفر و سهر کفران. ظاهرن خود کتاب علی این متن، این متن کتاب علیه و قذرکره ها لافی کتابی یعنی این کتابی که در قرمه اول بوده متنش اینجوری بوده و قذرکره ها لافی کتابی فقال جلد ذکرو از تبع و ماتت و شیاطین عراق ملک سلیمان الان قال فأخبر جلد ذکرو انه سهر کفر فمن سهر کفر فیوقتل و ساهر المسلمی لانهو کفر و سال رو مشکین لا یختر لعنه و کافرون بعدو کما جا ان رسول الله قال علیه صلوات الله علیه و حاضر شال دوم نگران ظاهرم اون متن کتاب قضای و این بوده متن اصلی اصلی بوده پرشن شد اون متن اصلی کتاب قضای و سنن حدود نیم سفرست مثلا یک سفرست این متن اصلی بوده وقت این متن اصلی سامر رو مسلمینی اختراس ها کنفر این در کتاب سکونی آمده هم یکی کش سکونی آورده دبرکردی و اما شهده و جلانه این در مصند زیر نسبت دانی شده به زیر زیرت محلی انعبیه انعبیه انجد بیگه اون وقت بقیهش یکی از این اون کتاب داره فقط چی رو که ما الان برمون خیلی ابحام داره در این کتاب تصریح شده ابن آسن کشته نکن اما باز در جعفریات، همه علیه نزوه قتل ابن آسن با این خیلی عشید. پس به ذهن ما میاد که اصل اصل و اصل مطلبی که بوده اینه باز دو با مرتبه در دانه داره رووینا ان جعفرین و محمد در نظر من این طور میاد خوب در قطعیم چون نهیدم پربایی شده باشه اونجه هاییش در دائم مستقیم از علی نرمو کنه احتمالا اون قضای رو سننه احتمالا اما اینجه که میگه روی نانجفر محمد انعبی انعبای انعبی احتمالا مستقیم کتاب سکونی و اینها باشه احتمالا دعید این از کتاب علی باشه این بخواسته به این دو تا فر بگذاره. و این روایت که پیغمبر با توسط در ویدیو محسن رو سر کردن ببینید این تیکه که پیغمبر از یه کمی شدیدتر از اون حدیس که آیشه بوده آیشه یه چیز را گفت این اضافه هم کرده در اینجا داره که پاقام رسول الله صلی سرین نه لا یسمم نه گوشش کار میگره ولا یخصه ولا یت هم ولا یت کلمم از اون حرف آیشه دیگه تلتر اینه با ولا یت هم ولا یت کلمم ولا یع کد ولا یش یک درجه خیلی بالای جنون یعنی چیزا خیلی خاصی سه تاثیر خیلی. من نظر علیه جبعی به معوضا سن مقال الله یا محمد ما شعنه که بقال الله علایی نمی فرمونه خدا نمی کنم شید ولی گم لایت کلمش شو جواب الله کرد الان که ما این رو من احتمال میدم جزا رواست سکونی بوده اصحاق خلیم حسش کرده چون خیلی نامروزه نصابه هست این الان فقط دائم اومده راست میگم هیچ ذره جامعه این که شما مقبولان آره یه چیزی عجیبه انسان هست می‌کنه سعی تشویید عجیب غریبی بوده که مجموعه اموره مثلا این قصه رو با آیشه نسبت. ما با آیشه هم حمله در بحث مثلا حرف عجب بیشتر از اون آره نقطا رو تنبندسون میگه لا یبسر لا یس اون چیزی تمام حواس ظاهره خمس ایشون از کار واسه بوده سمقر علی بسم الله الرحمن الرحیم بله البته اینجا زیدی داره که پیغمبر نه اصلا نه یک بچه رد میشد این پولوس بود میخواست گوشاراش بکنه بعد اونا به صلاح فاموله بچه آمدند و دستش بریدند و بعد دستش داخت کردن که چیدنش مرد این داره که بر اثر اون کار مرد این متنی که در اینجا از دعاهم آمده ظاهرن این متن دعاهم این یک متن بوده که به امیر و المؤمنی نسبت داده می که احتمال قوی داره مثلا سکونی نقل کرده احتمال دیگه هم هست الان در کتاب فرات کوفی همین متن تقریبا آمده با یک کمی اختلاف این متن آمده لکن از یک کتاب دیگر مال سکونی نیست احتمال هم داره تو اون کتاب باشه اون کتاب مال اینجا نرشه ایسان محمد انجدهی من عرض کردم این ایساabn محمد ابن عمر النعالی این سوزیه احتمال احتمالم داره که دعایم دا از کتاب ایساabn محمد یه رفته این هم جزب نواهای عمر النعالی لاکه از عمر النعالی نه حسن ابن نعالی ما مشهور نواهایی که از حسن, حسن ابن نعالی و حسن ابن و ما ها که بیشتند حسن ابن نعالی با خاضر ما و یه مقدار ما در داریم از فرزندان عباس بن یه مدرمان اولاد محمد حنفیه بعضی از اولاد محمد حنفیه, از حنفیه سنتی ازش دارند من جملاتی از بخاری حسن و محمد حنفی. حالا من قدرتون بحث میشن احتمال هم در از کتاب سکونی نبود در کتاب ایسات محمد باشه. الان یه متن غریبیه ظاهر اند این کتاب و سنت نیست تو اینجا داره البته اینجوری داره کانه عوام ندیس سلاسن سه روز این حاله در حضرت دستگاه لا لایق و لا و و ولایت النساء الاخرین دقیق میفرموید؟ پس بنابراین یک متن دیگری قیل از بارست کنیم به احتمال قدیم شاید هم ابن دعایم از این راه نقل کرده یک متن دیگری هم به امیر مؤمنونی نباهاییشون نسبت دادن که اون هم خیلی عجیب است و خیلی غریب است بعد راجب به سر را از کردم کتابی مساده دیگه هم داریم ما فعلا دنبال بله. اون از. باز در کتاب تبول عیمه دو پسر بستان با سندی که ضعیفه از مفضل ابن عمر عبی عبدالله قال قال امیر المؤمنین این جبریل اتن نبی قال یا محمد قال لبک قال این خلان یهودی سهرکه که لاخر این نسخه ها، البته این نباید در اختیار صاف داریم باشه شون اینجا این سند نیست این یزبه اون یکی نیست اینم راجع به از مطالبی رو که به امیر نسبت داده شده باز اینه در این کتاب صفحه 239 یا آخر بحثه این رو فقط فریح نقل کرده هیچ مصدر دیگه ای ما الان نقل نکرده. کافی استفسار تحضیب امالی ها بعد در فهمی آمده به عنوان روا اسماعیل بن مسلم ان جعفر محمد بن که همون قصه زنی است که سحری برای شوهرش کرده بود بعد پیغمبر فرمود افسن در تل بهار کرد در و لعنت ک الملائکه بله و علی اخیار ملائکه تو سموات و الارض قال فسامت المرئه نهارا لیله ها و حلق از ها و, و لبس ثوب فبَلَغَ زالکَ نبی فَقَالَ إِنَّ ذالکَ لَلاَیُقُ بَلْمِنْهَا قَبول نَمیشه این لایُق بَلْمِنها احتمالاً یکی از نکات اونجا باشه که حدّ دو ساحر القَض و لایُقِ استتا که اصلا توقش قَبول نَمیشه این روایت ها فعلا فقط در کتب اربعه مشهور ما در کتب مشهور ما در خقیق اومده اونم فقط از ورثه و قطعه هم مضمونش عجب قدیبه که اگر زن این کاری کرد دیگه هیچ رای بخصوان داره هر اقدر شهر را داره هر اقدر شهر را شهر ها مصله که به مکان این هم از عجایبه و اما خارج از مسادر ما در جعفریات که در مصر اونجا هم آمده خیلی عجیبه پس باز هم باز به سکونی به همون سند انا علیه هم در رسول الله باز نمرته بره. و شبی این روایت مقدار شبی روایت در کتب اهل سنت با سند ضعیفی آمده اما به اصحاب نسبت داده که زنی این کار کرد وقتی مراجعه به اصحاب کرد این واقعا نمیفهم توبه نداره میگه توبه نداره اینجوری لا توبه تله ها به اینجور اما این تعبیر که تمام زمین و آسمان و سنگ و خاک و باها و همه رو به هم ریخت و تمام ملایی رو لعنت کرده این لطفا سکونی نعر میکنن علیه روشه این راجع به به اصطلاح مجموعه روایاتی که ما داریم این کل روایاتی بود که اما علی ابن عبی طالب در باب سه و حد ظاهر رو اینها نرد شد حالا اگر مباید کردیم اونی که از رسول الله در باب احر سنت آمده حد ساهر در به سه این با همه از امام رو داریم و به لحاظ قصه هم ارز کردیم قصهش در یعنی در کوفه واقع شده جوندر یک ضربه به سیست در و از اون قصه معلوم شد اثمان مخالف بود عثمان نظرش این بود که حد ساحل قفل نیست در مسادر را هم اینو دارن که وقتی بچه های عمر یک ساحل کشتن اثمان مخالفت کرد اونا سامنشون معتلن این اون که از رسول الله الان به ما رسیده که کلن و اما قیل از اینی که مثال در مثال مسادر احل سنت هست و یکی دیگه هم هست این هم از سنت هست من تعلم شیعه امدنسر کان آخر احلیه برده این مقدار هم نهارفی دیگه چی دیگه چیزی از رسول الله در این جهت نهارلن نشده تقص می میمونه اونیشی که از امیر و مؤمنی نرخواد این خیلی طولانی دیگران خوندیم به متون مختلف و تعابیر مختلف هم در زنادقه بود هم در مرتد بود هم در ساهر بود هم تا آرز داشت هم مسادر مختلف و اجاهای مختلف بود دیگه به زنادقه که از راه بسره هم بود برای اولین بار چونین احادیسی دیگر ما محظم این احادیس را هم به سکونی برمیگرش به قیاسه به کلوب برمیگرش یکی شدوته و روایت سکونی در مسادر متعدد اصحاب ما بود البته اصحاب کوفی ما که بعد از سکونی باشن یا بردادی ما نرده نکردن از سکونی بیشتر روی خوم آمده انتشار این روایت از خومه و در مسادر زهیه هم هست در مسادر زیدی و زباشه نداره در مسادر اسمایلی هم هست و در مسادر زیدی حد دوال قفله در مسادر اسمایلی هم همون تفسیل بین صاحب مسلمین و صاحب برساکوفا و انصافا اونی که ما منحیص المجموع در دنیای اسلام با قول خودشون سنده سنده داریم این تندردی ما رو عمر ثابته پیش اونها برسنده ثابته اما پیش ما انصافا با تمام این شکل‌های و بوجاه‌های مختلف که خوندی که یک دان روایت درسته حسابی از ما صادراتی زوارا کنند یا زوار نریومه نمی کنه غیر از این جهات قومی ها به استثنای خط قومی ها یک روایت درست حسابی نداری برای حوالات زرتون به سیف علا امراشه که اون هم سندجاییه که حساب به ذهن ما میاد که اصفات احکام شرعیه با این ترتیب تو اونقدر آده مشکله خصوصا مشکل اساسی این که صحر یک حد محدودی نظره ما قد اینجا این محضر بگیده اینجا داریم در کتاب احتجاج تبرسیز سند نداره که امام صادق بن صحر چند جوره ولی لکه این واقعیته یعنی در ذهن و اوف تیبیشیدی ها رو به صحر نسبت اینه که دقیقه صحر نیست و ما اصولام گیمششونو بذاریم هر کسی ساحل بود، کشته بشه، این در عین حال علمی ما هم هست. چون اینایی که در به اسم سیرع الا میگن، اینا شگون مختلف دارن، کارهای مختلف میکنن، یک یعنی نواخ نیستن. اون که در یه زیاد تسامح زیاد داره. یعنی یک کسی یه تصرفات غیرواقعی رو کرده، این کافی نیست اینا. لذا به ذهن میاد که یک حد و حدود سیر کاملا واضح نیست، حالا فرض کنیم شما اینجا درس دو که هر کدوم مقام خودش داشته باشه چه بوده همون مقام خودش تعذیر یا حتی ایدام می با کنیم بایدونی که مثلا کردن مثلا با سه مثلا زنا کردن آثار زنا داره و حالا مجرد آثاری که در هر مورد خودش بار میشه. اما به عنوان صحب بگیم از یتوب یا لا یتوب این ثابت نمی با این مباد الله و الله و محمد